بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله على الله و آله الله الله و طافلین و لحفظ برحمن الرحمن بعد در باقی استثناء متعقب کمال بود یه مقدار توضیحات رو از کتاب در سنت هم گفتیم از وقت در از ما باز شدیم این مقدار تقریبا از ما بحث کردیم بحث سه ایشون را هم خیلی چون به نه خصوص اخیره نه حالا ما صحبتها رو بکنیم و نتیجه نهای اولا از این مسئله به در تاریخی به خاطر وجود جمعه از در قرآن تابقه داره در فرقه اسلامی ما موارد در قرآن داریم که دو هفت، سه هفت آمده و بعد یک استثنائی برگوارد شده خب طبیعتاً این مسئله محل بحث داره شده به خاطر گروهش در قرآن را بردن در این به روایات این به به تاریخی مسئله و روابط تاریخیش و هلوطا آیه قصد معروفه اما آیهات دیگه هم داریم منحصب با آیه قصد نیست دیگه که اون دیگه رسی خیلی در مواردی هم در روایات, در روایات داریم در روایات آمه داریم مواردی هم چه زیاد نیست هم این مواردی که ما در کتاب داریم میدرس کنن خیلی زیاد نیست که به اصطلاح ای این مسئله بسوری پر کار برده کار برده زیادی داره نه، در مجموع آیات برایات زیاد نیست این راجبه به راجبه هست راجع به سمره و کار برد این مسئله از کرده. چون مواد وجودش در برغان و دست خیلی زیاد نیست می توانیم اون موارد رو به اصطلاح خود ما فکریت هر در کنیم یعنی نوستیم با رجوع به شواهد اون مسائله پر بکنیم بدون اینکه افتیاجی به این مسئله و حسولی داشته تو این مسئله و کار کارساز هست این مخوام نیست مطمئن تأثیر داره و که جوری نیست که حالا حالا فرد بگه به هم بخوره این اونجور نیست این صاحبا سمرش در ما رو برامونه هست و که خیلی زیاد نیست بعدها اهل سند این مقدار است که حتی حسولین ما هم و هم این مقدار اختفار کردن در مثل آقای کوهی نایین مرموان زیادی ها دیگر آن بردن اصول متاخره برد با اهلستانت دو کارورد دیگه دو سمره دیگه هم برای مسئله پیدا کردن که خواهی نخواهی خب اون زیاده میعنصافن اونو دیگه یکیش در موازه طلابه که مثلا بگه انتطال طلبتین و طلبتن اللا طلبه که این اللا به هر دو میخوری یا به یکی میخوری و نه ای جسد طلابه میشه دو طلابه میش و بحثه که از این داره یه مقدار به تلابه یه مقدار شاید تلابه یه به واقع اقناره لخوالهی تلایی جرخمان و جرخمان و جرمان. الا که این استثناء به اخیلی میخوا و این ها سوره. ما اجمالا دروز از کردیم. این باب که کلیم در نداره. شون ما نداره اون ما اون نیست اون باسه هم ای که اینها برای باق طلاق ذکر کردن کلن که یه فقیقه کاربرد ندارد پس همه مسئله توی این مسئله طلاق پیش شما شاید صده اینکه بزرگان ما هم متعرض نشده نشده کاربورد نداشت پیش و اما اون مسائل اقراب هم با این مسائل حل نمیشه یعنی با این ترکه مسئله و اصولی حل نمیشون با زهورات و غرفی رو احساب بکنیم طبق زهورات و غرفی در همان و تمام و همان الا دير همان اينها حسين گفتي سه تا درست يعني سه طريقه ديگه است لا هو همان يكي دو لهو علی دیر إلا یک با در شاید فهم و عليه ديرا و حق الا يك استثناث بواسطه جمله در صور من هر تل و انصافا شاد و در و در همان مراد باشه 500 به صورت جدا نقطه مثلا اصلا بشید اینکان 500 دارم میگه خب واقعا فرس تا دو درهم بود دو شمده شمد دو تا بود پنج شنبه یکی شد من برای این جده که ما خواستم این ها در فاصله زمانی متعدد بوده این مسئله که آیا این برمیده بخیری یا برمیده به این یه هر کسا میشه این یه مقدار فهم و غرفی داره را چه به خود این بنزرنان یک جمله واره است، چند جمله نیستند. اشکال در اونجا یعنی وقتی گفتم داره همان، داره همان، داره هم پنج تا هم زدند. اینا چون سه جمله گرفتن، یک استثناء که به سه جمله لگنت شد بیشتر اینا بخشی از این هر که پس انصاف را دیگه این مسئله نه، این مسئله تلاشیم یعنی و باز می‌کنیم یعنی اندیکاتور مدنی و مدنی واره. گفته نداریم، اختراع واجد و. اختلاف فقیه به فقیه نیست اختلاف مبنایی باید رسول نداریم راجع به مسئله اقرار هم اختلاف مبنایی نداره، اختلاف اتظهاری با اونها داره. مسئله اقرار دیگه مذهب نیست مذهب که مذهب باشه نیست اما اختلاف ما با اونها استظهار و غرفی به نظر ما اونجا جمل متعدده نیستن یک جمله اون ارقام جمع میشن یک رغم حساب میشه استثنان به اون خورده این گفته در وعله خمسه الازگره همونی چار کن نیست که الازگره هست ایده تا به درخمان بخوره بعد و بخوره بعد و سه و این اینجور تصوری درستی پس بنابراین در این دو موردی که احل سنن مثال آوردن سمره بره بره بره کنه قضیه به درد کار نمیخوره یعنی این سمره به نظر ما تاثیر نداره سماره هم در کتاب و سنت، آیاتی در کتاب برای آیاتی داره. سماره در اون جاست، البته موارد شکن. خیلی مسئله کاروس استصحاب می‌شه، مثلا اساس برای یا اساس احتیاط مثلا شواذ تاریخی هم با احتیاط اساس الاhtیاض و این خب خیلی کار بود تو فقه، زیاد کار بود. اما این خیلی کارور نداره. این نکته دوم مسئله، نکته سوم مسئله معلوم شده که در این مسئله اوازه دو رعی اصلی بود رعی ابو هنیفه که بایه بود به خیلی برمیگرد و رعی شافعی که بود به همه برمیگرد لکن بعدها تشقبات و اقوال دیگه هم پیدا شد دار احتمال و دیوز توضیح فمیت این اقوالی که در کتب کتابت سنت و شیعه مجموعا آمده اینها رو ما باید به سه دسته تقسیم تقریبا تقسیم بکنیم یه نم برمیگرده به موادی ظهور و غرفی. یعنی بحثای دوغوی و حالا چه مفردات باشه شهیعات باشه مثلا یه مقدار شاجه که عصف با ما باشه یا با فا باشه یا با سمون باشه جمعه اسمیه باشه جمله مثلا جمعه قبلی خبری، همه خبریه باشن بر یا استفانیه باشن بر... یکی مقدارش برمیگرده به نکات ظهور و غرفی که توضیحش دیروزه اصلا یه مقدارش برمیگرده به موارد شری یعنی مثلا در اینجا اجماع حاله که این بگیم اینکی برمیگرد اونا رو پسیش باشیم مورد موردی و فقی اسم اونا رو گروشیم فقی اصولی نیستن دقیق میکنه پس یه مقدار بخشش به لغت برمیگرد از ظهورات و بروفی. یه مقدار هم موردی مثلا فقط در آیه قص میگن این الالدین تابون به حد نم به این تا یعنی لا تر براده هم شما دازن و ملائکم رو خواسته بود یکی مقدارش هست پس بحث در فرقی مثلا بزرگون حق و ناسه حق, و ناسه حق, و ناسه حق و ناسه. این سن بحث ها اصولی نیستن یه مقدار بحث هم به اصول برمیگرده یعنی بحث های قانونی انصاف و اون اینکه آیا اگر استثنایی برشید که صلاحیت برای جمعیه کمال ما تقدره چون صلاحیت داره رهنه میخوره یا چون قدر یک قدره بقید برشیر میخوره و من دست سابقا چند بار از بحث های بسیار مهم در اصول همین بحث تحلیل ظهوراتی که امروز اصطلاحا در غرب اصطلاح هرماسیت رو در حالتی هموردن به کار بردن از این اصطلاح هم از اما اول هم بود از آن حالا هرسته همون حالا به هر این که این روز گرمانه اقومدیم مثلا این همون بحثهی ای زهوراته و که من کردن موارد رادن که بیشتر اصولین روشت بحث کرده، تشکیف ایمه دارش تشکیفه در سیخه ایران در فران دار در فران دار جمعه شرکی زهور یه مقدارش اینه یه مقدارش هم تحلیله. این تحلیل رو در کلمات ثابت کمتر کار شده اشارات هست مثلا این الان من برشان تحلیل کردن این،, این تحلیل رفتی به استظهار ندارد این تحلیل اینه که در واقع ظهورات هر جا صلاحیت بود صلاحیت مصابیس با حقوق هر جا امکان بود امکان مصابیس با بود. اگر صلاحیت ارازه بود پس مر یه نقشه ای برای ابوزغورات معتقدند مثلا در همین فارسی میگیم آب بیاد خب یکی میگه از آب چیه مثلا اگه آب مثلا از فارسی که شراهه دوای که میگه بله آب شامل میشه امکنه خب ارفان چیزی در ضمن میگسید آب بیاد مرادش آب آف از اقیانوسه او نمیپرفه لكن نفس صلاحیت داره به نظر این یه بحثی داره که در بحث های یک بحث قانونیو نه بحث ارفیه ها درکه به معنای احتجاج شب درقش بکنم که باقید احتجاج تو اینه گفتی در بحث ارفیه ها امکان و صلاحیت مسارخ هست با وحور سؤال اینه بس اینه و دردامون چند دستان جالا شرح دادن یا کافی از روشی داره خوده کفایار میگه هر يوم که استعمال لغ مشتغل اکثر زمان امکانه ورده يومش اکثر ما آسین ما عوین ما از سیستم استاد و طحال بابا قاصین رافع دشا گیره چه اون بهتر امکان کرد امکان که امکان داره باست و واجب داره میگه نه ایشان واجبه یعنی با مراجعه به کلمات قدما واجب و لزوما بعضی از قدماهای خود اهل سنت به نظر فخرایی و تأکید میکنه که امکان داره اما واقع نشده آن بحث مشترک رو تاکید میکنه اون نکته فنی اینه این همین نکته که امروز در دنیای علم در دنیای هم با عنوان بحث هورمونستیک و اینا بحث های تحلیلیه پس ما یک بحث های تشخیص ظهورات داریم بحث تشخیص ظهورات عالمان در کتاب های ما بیشتر شده به اصطلاح چه در هم کفایه تشخیص عوامر نوایی و نظام مفعوم و منصوب و عام و مجمل و ما این هم همه تشریح شده براد. غالبا الان بحث تقلیدی رو آیان ما مناسبت کاری که مرحوم شیخ در بساره کردن تو اول حجیت زن سال بحث رسائل مرحوم شیخ تو اول حجیت ذهن ما به خروج به خصوص از قاعده از اعراض علم و ذهن حجیت ظنون حاصل از ذورات بحث حجیت کبرای ظهور رو غالبا اونجا آورده یعنی ما در اصولیمون متأسفانه با یک عدم انسجام عقلی هستیم طرق ما در اول اصول این بود که ما اصولا وقتی اصول رو تحصیل میکنیم یک باب اصول رو بگیم عنوان ظهورات بگیم این کاری که داره میکنه در این بحث ظهورات مباحث لغوی چی در مرحله تشریح و چی در محل تحلیل دو رو هم پشت هم منتظم بیارید پس نقطه روشن شد این نقطه در کلام مثل شافعی در حیفت بوده حالا من به این تحلیل اینوش مرده گرم کلامه مثل شافعی چیه میگه وقتی این استثناء صلاحیت عود به جمعی داشت چون اصلاح محل کلام همینه باید صلاحیت داشت باشدار عود به جمعی جمع. اگر صلاحیت داشت پس اراده شده این وحالیتی میگه درست صلاحیت داره لیکن قدر متعقل آخریه یعنی دقت بکنی در ظهورات چی؟ پس نگه دقت بکنی ولی در قرم دوم همه کرده کردن یک تحلیل ظهوری داره و این نوصی که راحت شما میشه دوش فکر بکنی ما معیار در ظهورات ما چیه؟ سوال معیار در ظهورات ما صلاحیت لحظه ده؟ من اینه اضافه کردم به هم به کلمات مثل مشاعر و معاصل ما و هم به کلمات اهل سنن ما آمد این یه کار بکنیم دو مرحله ظهور قاعد بشیم یکی ظهور عرفی یکی ظهور قانونی عرف خاص پس ما دو مرحله ظهور داریم این دو مرحله بخوایم تحلیلش بکنیم تحلیل این دو مرحله ظهور اینه پس اختلاف بین ابو هنیفه و بین شاویدی یا کسانی که از علمای ما غالبا نکتهش اینه این نکته اصولیه در حالی که جواب باشه و فوا باشه و ثمره باشه نکته لوغوی بود این که مثلا حالا این حد جاری میشه اون نکته فقهی بود در هر مسئله دقیقاً نکات فنی و مسئله در عینتون باشه من چراران هر کردم با این اصولی که الان در حوزه ما هست شما نیمتونیم وارد فکر بشید نتیجه نهایی بگیریم چون خیلی از این اصول نکات دیگری هم داخلیم حدرت ما توی این بحث تحلیل این نکات، این یکیش شقریه این نتیج اصولیه پس ما در این مسئله سه نکته داریم یک نکته به اصلا زهورات داریم که پر با این و فا و سمه و بله و نا و اینها رو خوندیم که اده از حد سنت باهی بودن آمل یکی باشه معم این نکات لغهی یه نکات فردی و موردی داره یه نکته اصولی داره در این نکتی اصولیش اینطوری میشه ازدهی گفتن چون صلاحیت برای همه داره این صلاحیت کافی که حکم بکنیم یعنی در ظهورات یا ظهورات مطلق، یا ظهورات قانونی صلاحیت مسابق است با اراده یا صلاحیت نداره خب داره اگه دستوری کافیه همین که صلاحیت بره پس اراده نشه مرال از اراده در این جمله چه معنا یعنی ما به طرف مقابل میگیم آقا این درس این معنا رو شامل میشه خب دقت بکنید گفتی آب بیار آب و افقای جنوب من تو اون مذهب تو واقعا از افقای جنوبی مثلا آب بیارید خب اون مهم نیست مهم اینه که آب بیار شامل اونم میشه از کلمه در نمیخواد بفهمون آب آب دیگه فهم. این مراد ما از اون ظهوراتیست ظهوراتی که محاوره و قرصی باید میشه تفهیم و تفهم بوشن یا احتجاج روز هست یه تجوه مولا حلال اول اول اول مولا یا یه به قانون بر شهرون و شهرون بر قانون, قانون. روزیر میشه میگه این تکنین خیلی قانون پرداری و عبدال مولا نهاشه بردار به هر حال بحثی که ما الان داریم اینه ریشه های بحثم الان برای شما روشن شوان. می‌خستن authority اثرال جدا می‌دون برای ارائه دلیل جدا می‌خون بله می‌گن باید اراده رو بکنید معنا این قاعده مستقفیضا که تزهور این عباده زهور میگه با صلاحیت این عباده ظهور نمیشه یه دلیل جدایی به علاوه باید بیاد آها دلیل دیگه باز یارو همین که صلاحیت داره کافی نیست اون مقدار که قدر مستقن اون ظهور داره خوب روشن شد داره اون قدر مستقنش اخیره بر اثر یاد میگیره اونا اینکه غالبا ترفضاً همین حرفو میزنن میگن ما ظهور میخوایم چون صلاحیت داره صلاحیت کافی نیست واضحه بود احتمال داره به اخیر برگرده احتمال داره به مرحله دیگه در تحقیق قدمت یقین اما معذال الزهور نداره کلام اصلاً بول به توقف ای این معنی نداره این معنی که بخوام بگم ظهور منعقد میشه مگر با قرینه غالبا قرینه عرفی هست در اخیر حتی با اخیر هم قرینه میخواد تو قرینه عرفی قدمت يقین طرح مسئله روشن شد پس این مسئله این جهتش اصولیه ریشه اصولی روشن شد تحلیل اصولی شد و این من میخوام این نکته رو عرض بکنم که خوب دقت بکنید مثلا نگاه کنید مردم استاد تفسیر قائل شدند که موضوع یکی باشه حکم های متعدد حکم یکی باشه موضوع های متعدد حکم و موضوع متعدد باشه اگر موضوع یکی باشه حکم ها متعددن آیه قرص یا حکم یکی باشه مثلا یکم علماء و شعراء و عدباء و فقراء و فقراء حکم یکی یکمه اما موضوع متعدد شد حکم یکی بود ولی موضوع متعدد شد در این دو صورت به همه برمیگرد ظاهرش اینه اما اگر هر دو متعدد شد، اون مخبون ندیگه ظهور نداره که به هر برمیگرد این تفصیل اون نقطه فندی رو بخوابید این تفصیل و استاد این لغوی نیست موردی هم نیست این حسولیه همیشه ای از کلم روح مطلب رو دخل تفصیل در این واب و فاوس و مو و اینها اینا لغویه تفصیل این که در این مورد آیه این یکی رو نمیگیره اون یکی رو میگیره این فقهیه روشن شد تحریب هم اینه که ما همیشه ده ده اعتقاد ماهینه یه چیزی آن اسمان می که فلسفه اصول میخواد فلسفه تو هم اصول هم نه از ما رو بیداری بید و یه فلسفه اصول است تحلیل این که کلام جوی باشه که حکم یکی موضوع یکی حکم و موضوع متعددد این تفصیل استاد اصولیه و درست همه یعنی این تفصیل قانونیه این نقطه قانونیه. پس یک نکات گاهی عدویه گاهی یک نکات شفیه گاهی یک نکات آنونی اینشون ما های که این نقطه نقطه قانونی اینطوره وقتی موضوع یکی شد یک استثناء خورد ظاهرش استثناء اون موضوع خورده خاینف های احکام هم استثناء برمیزده وقتی آمد گفت مثلا زید رو اشرام بکن زید رو مثلا این که کن همون زید رو اکرام بکن باشه احترام بکن برش نامه بنویسی مگر در وقتی که فاصله باشه این مگر در وقتی فاصله باشه چون قید برای زید خیی نه تمام احکام هم قید میکنه یعنی اگر فاصله بود نامه ننویز اکرام نکن سلام نکن خیی نه هایت باشه تمام احکام چون موضوع واحد بود استثناء هر به موضوع. موضوع هم که واحد بود خیی نه پنج تا کشورش اومده خیی همشون بود چون موضوع باشه ولی اکثر اکثر اگه حکم واردو ولو موضوع متعددو اگر اكو اكرام بكن زید و عمرو و حسن و بکر و مگر کسی که از اونها علنی مثلا الفاظ قبیح به داره مگر کسی که از... خب این به همه میگرد. چون اكرام یکیه چون استثناء به اون الا به استثناء خب به حکم می حکم اگر اون باو استثناء خورد چون موضوعاتش متعدد خایلانه استراعات میکنه موضوعاتم استثنا پس این استظهار دیگه استظهار اصولی این نکته خاطر در مقام بین مصادر بگیم اینه این نقطه نکته اصولی این نقطه نقطه فنی پس خاص بحث های ما رو خوب یعنی بحث ها روشن این اصل این مطلب حالا استظهار نهایی ببینید ما چون در آیات قران این بحث رو داریم و آیات و قرآن به عنوان مصدر اصلی تشریف در اسلام حساب میشه حالا غیران این که برسان عربی مبین و دانه کل کتاب داره ای بفی این کتاب باید هدایت باشه مبین باشه یعنی دلت بعیده با شواهد موجود مثلا سیرمزا غالب رخت یا اجمال عبارته قبول اجمال در اینجا بسیار بعیده یعنی معتقد بشیم که این آیات همه اجمال دارن یعنی خب ما باید دنبال یک نکته فنی هم باشیم مراد ما از نقطه فنی یعنی در ما به قانونی کنه هم اعتباری اینا تمام اقراض میخواد تمام حدث میخواد باید. چه نقطهی وجود داره که انسان یک کلام مجمند کار بره فاردن را داردونم تو اون ملکتا این رو در نظر گرفت این صافت حالا در روایات ممکن است این راوی اینجوری نرا کرده نسخه اینجوری بوده اشتباه بوده تصربه بعد ممکنه حالا اما در کتاب که این هر شکای ممکن نذاره لا تخرجو نمی بیوتهم ولا يخرج الا این دو تا واژه که اخراج یکی خروج نزنها را از کنه ویرون کنیم مطالبه نه خودشون خارج الاینکین به فاجزه خب این را بعد از دو تا حرف یک الاینکین آورده در بگه قصد بعد از سه وحف یا دو یک مورد را اولش این انصافش نمیشه به همین مقدار بگیم اجمال است و آیه مبارکه نیم. خیلی بلنده انصافه حقا یغا فوق العاده این مطلب دور از ذهن به نظر میاد ولیضا به ذهن میاد ما در این مسئله به همین قاعده ای که الان عرض کردیم برای انعقاد ظهورات احتفا بکنیم و اون که بگیم انعقاد ظهور با ثلاغیت کافیه دنبال خدرمو تیرقن دیگه ندید. یعنی به عبارت اون حق با مثل است. یعنی زراهر آیات در قیقت وقتی بعد از سه تا حکمی دو دوتا حکمی ها ظاهر که هر دو حکم ما خواست بزنه بزنیم. ولو موضوعا و محمولا حکمان و محمولا به قول محمول استاد حکمان و موضوعا یا محمولا و دو دوتا باشن. اون تعددش اون نکته درست میکنه. اون حرفی بر... با در نظر گرفتن اینکه یک خطاب الهی است و جهد قانونه و با در نظر گرفتن اینکه قانون باید شفاف باشه مثلا از نکات مهم قانون چون قانون در مقام احتجاجه اگر شفافیت نداشته احتجاج مشکل میشه ظاهرند و از طرف ما به طور کلی حق رو با شافعی میدیم انصافا به نظر ما در باب انعقاد زغرات و عرفیه که در مقام احتجاج هست چه در عرف آن و در عرف قانونی خود صلاحیت و امکان کافیه و این نقطه رو هم صادقا از کرده دیگه اینشانا بگذاره در بحث وجه حجیت زهور به نظر ما سر حجیت زهور یک نوع میساقه و است نه اینکه کاشفیت از مرا ترقیت به مرا ریشه اون بحث در اینجاست زهورات از چه جهت حجیته؟ ما زن و طریق به مراد متکلم بخارم پیدا بکنیم؟ خوب دقیق اگر معیار در ظهور اینه که ما مراد متکلم کشف بکنه. مثلا این گوه آبیار مراد متکلم کشف به مراد آبی که در مثلا اون وقت این بحث میاد که ظهوران با جیتشون زنیه اما اگر ما این بحث را اصلا بحثیم اینجا بگذاریم ما کاری به مراد متکلم نداریم مگر که متکلم خودش دست و قرینه بکنه الا ما کاری به مراد متکلم نداریم. اونی که پیش ما مهمه این نو میثاق اوغلاوی است. یعنی لفظ در زمینه اوغلایی گفته میشه که قرار داده آب در اوثمن وقتی میگم مرادن اون ماده وقتی میگم آب اون ماده بذهن من اونه شما هم اونه. تضیی و تفهم دو طرف است. هم تفهیم و هم تفاهم در آب اون معناست. در نان اون معناست. در میزی این رست نگسته است یعنی ولذا وجه حجیت ظهور کشف از مراد نیست که بگیم این زن زنیه اینه که مرحوم شیخ انساری عبدالله سره وجه حجیت ظهور رو در موارث حجیت زن آورده اون نکتهش اینه ولذا این بحث میاد که آیا حجیت ظهور رو زن نیست و از سهر عدله و قرمت تعبده به زن خارج شدهه یا اصلا با جهت ظهور زنی نیست قطعی نیست و مراد از زنی و قطعی نیست اگر به دنبال کشف مراد بودیم یعنی از لحظ میخواییم به این کلام لطلف آن میخواییم به قلب متکلم برگردیم این میشه زنی اگر به دنبال کشف مراد نبودیم مایسه حال احتجاج بودیم مایقه علیه تفیم و تفاهم بودیم مبقیدی. آب معنی آب مگر حالا اون اراده بکنه آب یه چیز دیگون بحث دیگه است آب یعنی آب نانم اینا زمین یعنی زمین آسمان این که اراده بکنه یه معنی دیگری رو چیزی دیگه ولی با در نظر گرفتن وقوع این مطلب در قرآن و به با عنوان قانون به ذهن میاد با حسب اون شواهد عرفی حق با ای باشه که امکان کافی است در اراده اینه همین که در صلاحیت داشت برای تطهیم و تطهیم قانونی کفایت میکنه همین که لفظی از لفظ رجوع الالکول و اگر بنابا شد در موردی راجع نشه اون باز بحث فبری است مثلا هم بحث ذکی انحصال نداره در همین آیه قسم ممکنه ما اصلا بحث دیگری هم مطرح بکنه، چون از کردم ادهی میگم فقط به اخیری برمیگه اولای کمون فاسقون ولی رضا لا تقبل لهم شهادت العدل رو قبول دارن میگن مثل ابو حنیفه میگه اگه خوب با هم کار کنه شهادت نمیشه ولا تقبل لهم شهادت العدل اولا شهادت قبول می شه تو به قبله خب در اونجا ممکن است یک بحث دیگری مطرح بشه خوب دقت کنید ممکن است در اونجا بگیم اصلا اون آیه سه حکم نداره چون شخص به وضوئی مصلی باشه سه تا اصلا آیه دو تا داره. اون آیه مبارکه دو تا داره یک حکم است والذین یعمرون المؤمنات المحسنات و الا ان یقبل فجلدوا هم ثمانین جلد این یک حکم ولا تقبل لهم شهاده عن این دو تا اون اتهام فاسدون بیان لا تقبل لهم شهادتنه فقط دیگه نیست قسم در حقیقت دو تو حکم داریم یکی فجلدوا هم ثمانین یکی لهم لا تقبلوا و سر عدم قبول چون فاسدان این نقطه پس قلعه که اومول فاسبون حکم ثبوت نیست و رضا تعبیرش هم عوض شد اون دو تا به سیغه نهر بود این به سیغه جمله اسمیه شد قلعه که این حکم نیست تحسیز و حکم نیست تأکیل لا تقبل لامشادتان ابدا پس دو سا حکم شد اگر دو سا حکم شد یعنی چه؟ میگن فقط به اخیری میخوره این لا ثروالام شده به اول نمیخوره در حقیقت اینا قال به اخیری شدن که به دو خورده به یکی خورده و اون روایتی رو که علوی تکرار نمیشون بحث طولانی شد اون روایتی رو هم که ما از کتاب علی بن ابراهیم خوندی متاسفانه حدیث رازی صحیح ام اصلا هیچ این تفسیر جدی وجود نداره اگه وجود داشت بد یکی از لفاظی اون روایات امام صادق امام میفرماید کسی که رحم کرد یوشلار ثمانین ولا تو بنده هو شهاده الا ان یتو سومی رو نمیواید به ما تو طه دو تا هم ده در و رس خونده مراجعه بفرمایید شاید خیلی حجیب게 واقعا مراد جدی امام این باشه خیلی ظرافت اما البته اون روایت این مشکل داره عین قرآن دو تو مورد بعد الا آورده که دید به اخری و اون جا این بحثی هست اینکه اونجا این بحثه پس رضا به نظر ما, ما به نظر ما هر به بخوره مشکل نداره این نکته که دو حکم یا یک حکم سه حکم این هم نکته فقهیه یعنی مراد فقهی یعنی باید توی فقه بررسی بشه اموریه مراد فقهی دیه. حالا فرض کنید تو تفسیر یا توی لغت میگی یا توی سزار و عرفی میگی این دیه. که آیا در اینجا دو حکم یا سه حکم در نه ما اون اصل احکام قبول داریم میگیم اولئکام الفازقون با با تغییر, با تغییر دو تا توش به صورت هم سمانی نجزه بنا تقبل هم شاعات عدله یعنی اولئکام این تغییر سیا که سعید همونه حالا این بحثه الان در اصول مفایده ندارد من این مواقصه ارض می کنم روشن بشه یعنی شما تو اون مسئله با یک مسئله اصولی حل نمی کنید مطلب رو روشنی تو. بله مرحوم دی از علمای اهل سنت گفتن شبیه اونم آیخوی به جوری گفته گفته چون گفته فجردو هم تمامین ولا تغبرون هم و اولایه که اینجا جمله اسمی آورده این منشه میشه فقط به بخوره این چرا؟ این بحث اصولیست ریشه های لغوی داره اما بحث است که خود تغییر سیاق یکی برای که به رو مثال آقای خویی این تا تانده این گفت علماء و ادبا و نحوی و اکثر قرآ القرآن الا الفستان همه اکتمل آها رو همین که حکم تکرار کرد میخواد به اخیلی بخواد. این با زهنه میخواد. برد که؟ با این که همون حکمه. اگه در آخری دو مرتبه شبیه میرن آنگه گفتیم علاقه آی خوبی فاید همین مقدار فرموندن. شبیه دیم سنی ها گفتن دوتای اول سیره امرانه بود بعدی شد جمله جمعه دسیقه بود. که دیگه همین تغیی این تقریر سیا محاود نشون بده که این به اخیری میخوره البته این بحث بحث اصولی ساسته این مسئلهش اصولیه فلسما برای این در مسائلی که بعد از شما باش محترم میشین در فکر دقت بفرمایید بعضی نکاتش اصولی و بعضی از نکات و موردی بعضی هاش هم ادبیه نیست اما به لحاظ نکته اصولی که الان محل کلامه است انصافا من هرچی فکر کردم مثلا در قران کریم و با در نظر داشته اینکه متن قانونی است و با در نظر گرفتن اینکه برای احتجاج آمده ظاهر بود در قاعده آمن رو و اون قاعده عام از در قاضی عام من غیر از متن که نکته حجیت ظهور رو و علائی میدونی اون این دنبال کشف مراد نیستین و چون لفظ تلاحیت داره خود به خود چون در این صلاحیت رو داره که به همه برگرده در مقام احتجاج میتونه مولا به عبد احتجاج بکنه این مقدار از صلاحیت یکی در احتجاج که بگه من زهور دیر فرم یعنی به اصطلاح اینو وزه من اصلا در لفظ عربی خود حیات هم وزه دارم در لغت فارسی داره که در لغت عربی اصلا غرض لغت عربی به هیئات و به حروف و به, به ترکیب جمله و حیات اشتقاقی و حیات افرادی و مثل اشتقاق و هیئات ترکیبی و ترکیبی تام و ترکیبنا تمام اینا غرضه داره این در لغت عربی خب تا اینجا ان سالا مثلا تعالی مطلب پس به نظر ما انصافا ضرور اولیه‌ایه اما مسئله مشهور استاد یا شفیعون هم ما نایینی فرض که اگر حکم باشه انصاف قضی این مطلبیشون درسته یعنی به عباس دیگر ما چون محتقی ظهور و موجود داره اما ممکنه این ظهوری یا تقریب بشه یا تضییف بشه و با تضییف دست نگرد میداری یکی از راهای تقریب این ظهور اینه که حکم یکی باشه راست تقریب بشه بیشتر تراحیتون میشه. یا موضوع یکی باشه با بحث تو هوان و موسو انصاف دیگه رجوعش به جمع جمله صاغره روشن کرده انصاف قرضیه خیلی روشن کرده یا مثلا فرض کنیم پنج شُخب روی جاب در این تفسیری که آزیا قائلند مثلا آزیا از این راهوارش بیان را. در یک کلام باشه در دو کلام مثلا بگه هر کلمه علما از مثلا عذب الف مثلا قول را خلاص پنج شُخب داره متفرد میگه ولی یک اون دانش بعد بیگه لاسو فیلم فساق منحهده یا مثلا لاسو فیلم فساق علازه خب این به همه میخوره به پنشتون در کلام زیگه ای باشی که ناظره دیگه این کلام باش انصاف قضیه این که به همه بخوره انصافش شعیه یعنی اینا نقاط مثبتی هستن که تقریهت میکنن اون زهور رو زهور تقریهت بیشتری که گا میکنه اما اگر تعداد هم بود اون به حساس ظهور تقلیدی میشه اما اصل ظهور محفوظه اون مسئله این که آلوکویی که اگر تکرار کرد رو انصافاً یه نقطه منفی هست راسته اما این که مانع ظهور بشه اون روشن نیست مبادینا در از رنگی رو خودش مراقص یعنی این که دومتره حکم اکشقل رو تکرار کرد نقطه ای داره اما این نکته ماله همه که نقاض برای کلامی که بودیت قانونی داره کلامو ما هست کردیم در تحریر قرآن یک دیر بنایی قرفی داریم و بعد باز این مدد قانونی داریم ما نباید برای تحریر قرآن به این مثال قرفی برگردیم این درست نیست اون قرف آم یک حساب داره چون در قرف قانونی مسئله احتجاجه معاخضه از سوال و جواب دین قانون آثار تراغان دنیا و آخرتی برش داره اینه با مثال های و گرفیه میشه قاطع بکنیم خلقش رو کنیم ولی ازا به ذهن ما مثل بحث و برنده تمام بکنیم انصاف از یه حق با مثل شافعی گاهی ممکن ممکنه در بعضی از موارد یک ابحام پیدا بشه اون ابحام ها رو اگر باید قوائد آمنه نستیم که مثلا وحدت تو حکم نتونستیم بکن. حل بکنیم به نوع موردی و الله خواهی نخواهی کلام محبه هم میشه و غالبا این در روایاته مگه در جوی که اون خودو قرآن حدثه چون گاهی بوده که قرآن مثلا محب لذتون بحیم از الانعام لا مایوس لا که یکی نقطه خاصی باشه، نه ای که اینجا که داره. چون بساطه قانون مخواهی یه اصل اولین مگه اون مماردی که برای قرآن شده آیه این در اواخر نزول قرآنه ناظر اون مقام جامعه جامدی که فهمد بعد در آخر هیچ آموزشی از کوران و سنت پس اینها هر لحظه هر لحظه نه هر آن اینجوری است. اون هر لحظه تو را مطلع. اما که ما هم بذار میگیم که هر ما رو وشی، ادعا کنیم اینطوری کار میکنه، گاهی و گاهی ابهام پیدا میکنه. اینطور نیست که پیگامد میکنه. و ما هم در اینجا از غور و ارثیو بررسی میکنیم، به نظر ما در از غور خویشم و در از غور خانویشون نداریم. دیو باده ترگی به با هم بریاده. شون مقام احتجاج خوزن آیات کتاب اختضاع آیات کتاب این بحث وردی رو که مرحوم استاد مقدر کرده آیه ماراجه کن باید نسخه یه بند که چاپناها باید یک چفیش غلط چاپ کرده آهار کارد جایی دیگر که دردن که نمیدن نسخه کتاب جاییی شاب شده باز آهار کارشون ماراجه کنند بحث تخصیص کتاب به خبر واحده از آنکه این بحث بحث قدیمی بوده یک معروفی بوده، مخصوصا که مقدار این بحث متاسفانه ریشه باید مبانی خلافی سنوشیه خاص به خودش بگیر نگیرد اما خب اعتمالا چون اولین چیزی که اول وقت محضر کرد آیات عرصی در کتاب الله او تخصیل در رسول الله نحن ماهاشون انبیاء لا نورده که در خطوی از زحنام از عرض نصب به اطلاعات عرض در کتاب حتی در انبیاء که انبیاء هر سردن این از همون روشن شد، این از که اولین بار بحث شروع شد که آیا تخصیص کتاب به وارد واحد میشه یا نمیشه این بحث تو الان کتاب احرسانات هم, هم در همین کتاب هم مثلا بقران یا مثلا به اشمول در همین کتاب بعد به المهد ایشون اشعار سر این بحث رو خوب دقت بکنید گاهی وقت چنین اشیایش شد یک اختلاف اشیای دیگه داره ایگو ایشه های متعارفی که در ذهن شما هست در این در اینجا در همین البار محیط که در اینجا داره البته اهل سنت در این مبحث چیزهای محیط سوال دیگری رو هم حفظ کردن لکن مامای که اونا رو محطن نجدهدید مثلا یک تخصیص کتاب به کتاب دو تخصیص کتاب بدایید اقرید سه تخصیص کتاب به اشماع مثلا میگوید چهار تخصیص کتاب مثلا به خبر متواطع فنس این شوید آل خوی و مرمونه هیم اردتا نهار هم هم هم خیلی بیرون بقیه و متعرض نشده این تخصیص و عدله منتصره در این کتاب از جلده د از سرخه ۶۰۰۰ از تخصیص به عدلت یک تخصیص به دقیل حساب کرده یکی که از رو تخصیص به هست تخصیص به المخطوق اینجوری رزنج رو بعد، بعد بعد سرخه ۶۰۰۰۰۰ هفتش تخصیص که عموم کتاب به خبره واحد در این کتاب و خیلی یعنی میخواست اونرم بیشمالاست وقت در اینجا بله وقتجی بله. ابن سمعانی فی باب الاخبار علال جباز به اجماع صحابه مسئله رفت باستیه مسئله عقایدی، فه این ها خست و قول و سالا یوسیکم به قولی علیه السلام این ها ماهاش رندی لا نغرد بعد داره که این قال و این فاطمه تبیرشون رضی الله انها سامان الله علیه ها طلبت بیراز این ما خواهد سحاده رو خدشه بکنه و چیش رویش ما اصلا برسیشون قلنا انما طلبت نقلا یعنی ایشون میگه نظر ما این که حضرت زده طلب نهله کرد طلب این کسی پیران بر خدک کننه بخشیجه یا حوایث سره هوایت سبقی در صدقه ها هوایت یعنی هفت هفتا در مهینه بود حدود این آخره در نظر بگیرن حدود همین آخره دقیق در نظر این تا مسجد و باق همین الان هوایی و باقل هوایی اسم میشه هفتا باق نسبتا مدکشتن مالی یک بودی بود این ها به یک جا دقت هم بر بخشی دقیق میکنیم این هوایت سبقی رو خیلی به یک سارو بوده بود. آهمه هم همی شیستی به قرار از این که یکی اینه اولا تیه این حق این است که نسبت به حواظ سبر اعضای نیلا سورین اشتباه کرده حواظ سبر نه نبود یکی مثلا یه که اشتباه نشید خیلی برگاه فضر دو منطقهی بود که یک بود دو صورت قلعه های و آب... تو شامان بود آبا کردن بینشون تقریبه 6 کیلومتر کلومت خیب ای خیبر خیب دید خیبر دیده خیب پدک دیده خیب پدک دیده خیب پدک دیده وقت خیب پدک رو رسول الله با جنگ گرستن وقتی خبر به قلعه فدک نصیب با اون فاصله که خیب پدک ساغل شد به اصطلاح بر اثر جنگ تفلیم خیلی تمام شد اونا بودن خودشون صلح کردن با پینادن ولی ازا اون کنابلایشان صدقه ورز از زهرا دادن این نهره مرادشون صدقه خدا من این بحث تاریخی مفصلی داره من نمیخوام وارد این بحث بشم که در حقیقت می ادعای از زهرا چی بوده شیخ انصاری هم داره بحث در حمزاوادیه ما مدعی هستیم هم طلب نهله است هم طلب میراث هر دو با هم این داره جواب بتا دا قول نا انما طلبته النغلا ناملا یا نهله به تحبیل ما اون خدکه اما حوایث سبعه روزه میراثه. و از که این از, از زهران چیزی الان ما چیزه این محاله های ما غالبا ما, ما, ما بین خدک و محاله همین به اصطلاح حوایث سبعه هاست نه همچی بوده این قسمت آئیشی کنابی داره که در خیلی بخاری آمده و سهم من, خ... من خیبر. چیز دیگه بوده فقط صدق نبوده چون این دسمه هم خیلی اتیار به شرق و توضیح با این همه کتاب نویشن به نظر این حقیقت تخصیل هنوز حق نمد کرد ازا نشده این شاید یک جایی وقتی بوده که مناسبت من باید صوتی ها که راجعی به این دسمه هم که الان جاش اینجا نیست حالت هم این که این مسئله پس منوش شد که این مسئله از احد صحابه مطرح شد لکی چون بزرگان شیعه بعد ها گفتن این مسئله رنگ بوی مذهبی نگرفت یعنی این کسی که چون هم مسئله رنگ و بوی که